اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بحث مالکیت فکری جلسه چهاردهم در رابطه با ملاک مالیت اشیاء چهار تا نظریه مطرح شد یک میل و رقبت داشتن به آنشه شيء مورد میل و رغبت مردم باشد دوم قابلیت داد و ستد داشته باشد سوم شیء مفیدی بوده که شاره از اون نهی نکرده و چهارم اینکه اون شیء کمیاب باشد به وفور در اختیار همه مردم نیست خب در رابطه با این توضیحات ملاک های چاروانه توضیحات کافی داره شد اونش که به عنوان جنبندی میتوان گفت این است که امور فکری اختراعات پدیده های ذهنی اینها مال تلقی میشوند زیرا از نظر اغلاع و عرف عام اول از این رمید و رقبت به این اشیاء وجود داره سانیان قابلیت داد و ستد دارد سالسا شیء مفیدی است و شاره از اون نهی نکرده و اگر هم ملاک چهارم را به ملاک کمیابی اونم با توجه به اینکه که شعنیت شما گرفتیم و پدیده های فکری امدتاً اموری کمیاب هستند اینطور نیست که همه جا و در اختیار همه کس و در همه این مکانه ها یافت بشود میشود گفت این چهار ملاک بلا اقل اون سه ملاک اول درش موجود هست ولذا این امور دارای مالیتند. و مال تلقی میشوند ولذا مال بر اینها صرف میکنه در قوانین مختلف دنیا و از جمله قوانین و نظام های حقوقی ما هم به صراحت به این امور فکری و معنوی مال اطلاق شده همطور که ما به عین منافع انتفاع و الی آخر مطالبات اوراق سهام حق سرقفلی مال سرق میکنه به این پدیده پدیده‌های نوآور فکری هم مال سرق میکنه ولذا قانون گفتن تعدی و تجاوز اینها موجب کیفر و جزاست خوب البته مال در صورتی که به پدیادهای فکری گفته بشود این مستقل است از اون کسی که و از این کالایی که این فکر روی او پیاده شده لذا بین خود پدیده فکری و اون شیعی که متصفه به این پدیده فکری میشود باید تفاوت قائل شد خب در رابطه ما مالیت اموال فکری این سابقه ای چند قرنه در غرب دارد و در شرق هم تا حدودی این هست و مورد بررسی است و جایگاه خودش رو باز کرده و در نتیجه مالیت او رو نمیشود انکار کرد خب در رابطه با اموال فکری بعضی ها ادعا کردند که اموال فکری به غیر از اموال دیگر دو تا ویژگی دارند که اموال دیگر ندارند به اصطلاح اموال فکری در مقابل اموال متعارف و سنتی دارای دو خصیصه هستند یک اینکه اموال فکری محدود به زمان هستند یعنی چه یعنی قانونگذار در برابر حقوق ویجهی که اعتام میکنه به پدید آورنده این فکر حمایت ازمال فکری رو محدود به زمان مشخص کرده که پس از پایان این مدت این مال دیگه از ملکیت فرد خاص خارج می شود و به ملکیت عمومی در میاد. دومیشم اینی که اموال فکری محدود به مکان هستند یعنی اون حقوقی که تعلق میگیره به پدیدآورنده اثر فکری محدود به داخل مرزهای یک کشور و دولت در خارج از اون کشور از اون حقوق حمایت نمی کند اضافه من اصل سرزمینی بودن حمایت از انوال فکری به نظر ما این سخن تام نیست چرا؟ بحث ما سر مالیت داشتن و صدق مال بر پدیده های معنوی و فکری بود بین مالیت داشتن و حمایت از مال فرقه اینکه قانون گذار حمایت از مال فکری رو محدود به زمان میکنه یا مقیده به مکان خاص کنه غیر از این است که این شی آیا مالیت دارد یا ندارد؟ تعریف مالیت و پدیاری فکری ثابت شد. حالا میخواد کسی از این حقوقی که مترتبه برعوس حمایت بکند یا نه؟ حمایتش محدود باشه یا نامحدود باشه؟ لذا بین اموال فکری و اموال متعارف از این جهت هیچ فرقی نیست، لذا ما باید این الفاظ رو و واجه ها رو بررسی کنیم که حالا که شعی ماله است آیا به ملکیت کسی هم در می آید یا نه بعضی از امور هستند که ولو مال حساب می شوند، اما به حسب شرع ملکیت ندارند. مثل خمر مثل کلب، کلب هراش سگ وحشی بیابانی هار خوک میته و بعضی چیزهای دیگر حالا اینا ولو یگیم مالیت دارن ولی به ملک انسان در نمیآیند انسان مالک اینها نیست ولو حق اختصاص هم داشته باشه و تصرف در اینها بتواند بکند اما اینکه میگند ملک توست نه شارع ملکیت بعض از اشیاء را و بلکه مالیت بعض از اشیاء رو امضا نکرده و قبول نداره بلکه نفی و رد کرده حالا بعد از این ثابت شد پدیده های معنوی و فکری به حسب عرف و مال حساب می شوند با اون ملاق های که گفتیم ولی اون یک ملاق هم سق کنه کافیه و در بحث معاملات هم شارع مقدس اختراع جدیدی و جعل جدیدی ندارد معروف هست که معاملات اینها امزایی عبادات تحسیسی ان قالب عبادات چیزهاییست که شارع آورده قبل از اون نبوده به خلاف معاملات اکثر قریب به اتفاقشون است که در میان مردم قبل از اسلام هم شایع بوده و اسلام هم اونها رو تأیید کرده و همون آثار رو بر اونها مترتب کرده الا شزه و ندر که احکامی رو تخصیص داده است و مواردی رو تغییر داده است که خیلی کم است. اذا عناوین همون عناوینن احکام هم غالبا همون احکام هستند حالا آیا پدیده های فکری که مال هستند ملک انسان هم حساب میشوند یا نه؟ مالیات چیزی که قابل داد و ستت است مورد رغبت مردم است یعنی عرف عام و بنای عقلا این چنین است. یا <تصفيق> <يا> بفرمایید که امر مفیدی است که شارم از او نغی نکرده یا مثلا شیء کمیابی است خب آیا ملک حساب میشود یا نه ظاهرا این چنینه ملک حساب میشود یعنی این پدیده فکری اختصاص دارد به اون کسی که این را پدید آورده است و حق تصرف با اوست و او انواع تصرفات رو میتونه در این پدیده خودش انجام بدهد حبس کند او رو نقل و انتقال کند و انواع تصرفات دیگر خب آیا ملکیت هم دارد یا نه میشود ملکی کسی بشود یا نه آری ملکیت هم دارد البته بنابراین اینکه بین مال و ملکیت فرق قائل بشیم در بعض از های حقوقی مثل انگلستان بین مال و ملکیت تفاوتی قائل نمیشوند. هر دو رو یک چیز می گیرند لذا برای اشیاء ارزش ذاتی قائل نیستند وقتی میگن مال یعنی اون شیئی که در اختیار مالک است از برای خود اشیاء ارزشی قائل نمی یعنی اون حقوقی که هر کسی نسبت به شیعی دارد در حقوق فرانسه هم چنین چیزی دیده شده است یعنی مال رو فقط به اشیاهی که تحت ملکیت هست اطلاق می لذا اگر چیزی رو کسی اعراض کرد از او و دور انداخت اینو دیگه میگن نه تنها ملک نیست مال هم نیست چون مالکی وجود نداره تا نسبت به او اعمال حقی بکنه اما در نظام های حقوقی دنیا غالبا عمدتا در اسلام نه بین مال و ملک فرق است چه بسیار چیزهایی که مال است ولی ملک نیست و بلعکس چه بسیار چیزهایی که ملک است و مال نیست یعنی بین اینها از نظر نسبت منطقی رابطه عمومی و من وجه هست مثلا اگر کسی یک برگ کاه دارد در از کاه انبار خودش بر میداره دستش میگیری دیگری حق نداره این رو از او بگیره و ببره این ملک این ولی اون مالیت ندارد یک برگ کاه که مالیتی ندارد نه مورد رقبت کسیه نه چیعی کمیاب حساب میشود نه قابل داد و است و نه شیء مفیدی است اما در این حال ملکی اون آقایی که از تو انبارش برداشتیم و بالعکس بعضی چیزها مالیت دارن ولی ملکیت ندارن مثلا انوالی که مال مردم است مال حساب میشه ولی ملک من نیست من حق تصرف در اشیای دیگران رو ندارم نه از باب این که بله این مال حساب نمیشه چرا مال هست ملک من نیست اشیایی که بربوط به خود ماست و متعارف با اون رو دادستالما هم مال هم ملکیت دارن بعضی اشیاء نه مالیت دارن نه ملکیت مثل برگ کایی که مالی است اولا همسایمه این نه مالیت داره و نه ملکیت نسبت به من دارد که در او تصرف بکنم لذا ملاک مالیت با ملکیت با هم فرق می کند مالیت همون ارزش داشتن است ملکیت همون است که منشعه تصرف در یک شهر. برای فرد یا افراد یا مجموعه خاصی می شود. مثلا بین مالیت و ملکیت فرق است خب حالا آیا ببینیم این پدیده های فکری منشأ ملکیتی دارند یا نه می شود گفت انسان این ما اموال را ملک خود میداند و ملک خود کرده است و ملک انسان حساب می شود یا نه برای اثبات ملکیت این پدیده های فکری خوب. ما باید اسباب تملک را بررسی بکنیم ببینیم که چه چیزی سبب ملکیت است و آیا اون اسباب در اینجا صدق می یا نمی اگر صادق بودن پس اینها ملک انسان می شود و الا نمی شود اسباب تملک در قوانین ما به چند چیز تعلق گرفته است یک احیاء عراضی مباد دو حیازت اشیاء مباد سه عقود و قراردادها چهار تعهدات و زمانتها پنج اخذ به شفعه شش ارس خوب البته موارد دیگر میشه اضافه کرد مثل وصیت. بنابراین این که اینکه او رو ایقاع بدانیم یا صلح که اینها را از ایقاعات بدانیم خب این امور رو به اسباب تملک اسباب تملک منظور اون وسایل مشروعی هستند که میتونن تعادل میان دو مال را به هم بزنند و یکی رو بر دیگری برتری بدن فزونی بدهند خب اگر حالا کسی خارج از این اسباب استفاده بکنه و برداشت کنه از مالی دیگری اینو میگن استفاده بدون سبب بدون جهاد به سبب یک عنوان قانونی که که قانونگذار بر او اثر بار میکنه خب در رابطه با اسباب ملکیت در علم حقوق گفتن اسباب دو قسمه است بعضی اسباب ایجادی ملکیتند بعضی اسباب انتقالی ملکیتند اسباب ایجاد ملکیت به اون اسباب می میکن که برای اولین بار باعث می شود نسبت به مالی ملکیتی به وجود بیاید یعنی قبلا سابقه ملکیتی نبوده تازه با این سبب و با این عملی که بناس انجام بشه این به ملکیت در میآید این میگن اسباب ایجاد ملکیت اسباب انتقال ملکیت اون اسبابی هستند که موجب انتقال ملکیت موجود رو از شخصی نسبت به شخص دیگر فراهم میکنند لذا اسباب انتقال ملکیت گفتند خارج از اراده و اختیار مالک است یعنی انتقالهای قهری مراده است خوب اینکه اسباب یا ایجادین یا انتقالی هستند خب این نمونه و مثال دارد که الان اینها رو نام خواهیم برد و این چیزایی که نام بردیم تصمیم داره اونا رو انجام میدهیم بعضی در این باب قائل شدند اینکه ما در فقیق میگیم تملک دو قسمه یا فعلی یا قولی اشاره به همین دو سبب است سبب ایجادی سبب انتقالی بعد گفتن منظور از تملک فعلی همون اسباب ایجاد ملکیته منظور از تملک قولی اسباب انتقال ملکیته است ولی ظاهرا این سخن درست نیست تملک فعلی و قولی در فق آمده این اعتبار که در تملیک و تملک فعلی فعل سبب نقل و انتقال میشه انسان با یه عملی باعث می شود که به ملکیت دیگری در بیاد تملیک و تملک قولی است که یک سیقه سبب نقل و انتقال می شود یعنی قول، گفتار، لفظ نزا تملک قولی مربوط به عقد به سیقه است تملک فعلی مربوط به عقدهای معاتات است آن شما بدونی که لبس رو به کار ببری به صرف اینکه عملی انجام بدهی مالک میشی مثلا شما وارد یک کارخونه میشی یه دستگاهی نوشته اگر یه دلار اینجا وارد بکنی یه نوشابه میگیری شما یه دلار وارد میکنی دکمه نوشابه رو میذاری نوشابه میاد بیرون حالا شما مالک این نوشابه شدید به خاطر اون پولی که پرداخت کردید و اون پولی که دقیق به حساب و داخل دستگاه کردید این تملک فعلی و معاطات ما زیاد داریم که در عقب و ایقاعاتی که به وجود میاد بعضیاش به سیغه و بالقول بعضا نه بالفعل است و بالعمل مثلا در باب وقف که یه مکان را سیغه وقف می که اینجا را وقف برای فلان کار کردن برای فلان چیز کردن برای فلان افراد یا گروه یا حیثیت اجتماعی کردن گاهی مقا نه عمل مردم با یک شیب به است که همه از او انتظای وقت میکنن مثلا یه محلیست که همیشه مردم برای نماز خوندن اونجا میرن و اونجا محلیست که استفاده نماز ازش میشه نماز چه فرادا چه جماعت خب در طول زمان اینجا به عنوان مسجد معروف شده ولو علم معلوم نیست که کسی سیغ وقف اونجا خونده یا نخونده هاشکاری هم چیزی نشون نمیده کسی هم نقرار نکرده یا نه ما یقین داریم کسی هم که سیغه لفظی برای وقف اینجا قراعت نکرده و ادار نکرده است اما مردم با اینجا معامله مسجد میکنن همین وقت میشه وقف, می وقف معاتاتی همین عمل مردم باعث میشود که عنوان وقف اینجا بگیرد رضا احکام مسجد رو هم دارد یعنی تنجیزش حرام است تطهیرش ازاله نجاست از مسجد واجب و فوری است نماز مضاعف است و احکام دیگری را که مسجد دارد مثلا در مسجد نمی شود خوابید و چیز مکروح است و چیزهای دیگر لذا تملیک و تملک فعلی و قولی غیر از اسباب ایجادی و اسباب انتقالی است خب اسباب ایجاد ملکیت، مانند تعهدات و زمانتها یا مانند احیاء عراضی موات کسی بره زمینی رو که هیچ اثر آباد بر اونیز بمیتی کسی سابقا بر اون نبوده و بلا استفانه رو احیا کند، آبیاری کند، کشتزار کند، باغ درست بکند ساختمون درست کند و کارکنون هرچی سوم حیازت اشیاء مباه پرندگان هوا ماهیان دریا خاشاکی که تو بیابان میره جمع میکند و میوههایی که از درختان جنگلی میکند اینا سبب ایجاد ملکیتند خب تعهد و زمانت این سبب ایجاد ملکیت ذمه شخص است برای ذمه شخص دیگر من تعهد میکنم که این کار رو برای شما بکنم. به عهده من است که فلان کار را برای شما انجام بدهم. اینجا ایجاد ملکیت ذمه است که شما مالک ذمه من میشه و ذمه من مملوکی شما میشود. اما احیاء عراضی مواد و حیازت اشیاء مباه اینها باعث ایجاد ملکیت به مالی میشوند که قبلا مالک نداشته است. نظام ملکیت برای شخص ایجاد میشد. خود احیاء اراضی ملکیت درست میکنه. خود حیازت امور مباه ملکیت برای انسان درست میو. انسان می شود مالک این اموال به ملک انسان در میاد. این ماهی مال منه، این مرگی که از هوا گرفتم مال منه، میوهی که از درخت چیدم یا این خشب و احشابی که از بیابان جمع کردهام ملک من خواهد شد قسم دوم اونجا که اسباب انتقال ملکیت مثل عقود مالی مال من است با عقد بی به شما منتقل میکنم یا ارث خوب قبلا مال پدر بود وقتی مرد این موت پدر باعث می شود که این انبال میلی که بشه بشود، فرزند اخذ به شفعه همینطور در باب شوفه بله همین که دو تا شریک هم، یکیسی که ما صحبه رو بفروشد اون شریک دیگر آن، میگه من اراده کرده و من برمیدارم و این مال من است. با تصرف و دست گذاشتن رو مال دیگر شریک این مالک میشود و خب هم میده یعنی اون آقای دیگر حق ندارد اون سهم خودش رو به غیر شریکش بفروشد پس مال مال کسی دیگری بود اما یک عملی انجام شد یک چیزی به وجود آمد که باعث شد که مال از یه شخصی به شخص دیگه منتقل بشه. خب در بحث ما اسباب انتقال ملکیت یقینا مد نظر ما نیست چرا؟ چون انبال فکری قبل از اینکه پدید بیان و اختراع بشن اصلا ملک کسی نبودند، نه وجود خارجی داشتن و نه وجود ذهنی لذا اسباب انتقال ملکیت در اینا اصلا معنا ندارد این آقای کاشف و مختره است که اومده تلاش کرده وقت گذاشته مال زیادی هزینه کرده یه یعنی مال فکری رو به وجود آورده اختراعی رو محقق کرده خب این باعث ایجاد ملکیت میشود یعنی تازه میشه مالک اسباب انتقال ملکیت مالی جایسی قبلا ملکیت وجود داشت مال شخص دیگری بود حالا بناس به شما منتقل بشه یعنی ملکیت از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا کنه اما در انبال فکری اینجوری نیست از پیش مالی وجود نداره بخواد موضوع انتقال قرار بگیره تو اون چیزی که در بحث ما مد نظر است بحث کردن از اسباب ایجاد ملکیت به اسباب احراز ملکیت است اسباب احراز ملکیت برای کسی که پدید آورنده یک اثر فکری و معنوی است زو او اومده اینو ایجاد کرده و خلق کرده و باعث شده که ملکیت به وجود بیاید خب حالا باید بررسی کنیم ببینیم چه اموری هستند که سبب احراز ملکیت میشوند نسبت به اموال فکری و قانون چه اموری را می میتواند سبب ایجاد ملکیت در رابطه با اموال فکری امضا کنه و تأیید کنه و قبول کنه او رو خب اونی که در قوانین ما اومده و در دنیا هم معروف این سه چیزو رو میدونن یک تعهد دو احیای عراضی مباد سه حیازت اشیاء مباه خب آگه این ستا میتونن سبب ملکیت پدید آورنده اثر فکری بشن؟ یا نه غیر ستا اسباب دیگری را هم می توانیم اضافه کنیم رضا این سه رفت که معروفه و در قانون آمده اینا را اول بررسی میکنیم ببینیم آیا اینا میتونن ملاک باشن برای ایجاد ملکیت نسبت به پدیدآورنده آورنده اثر معنوی فکری یا نه اگر توانستیم که خوب مسئله حل شده است و الا باید بحث کنیم آیا غیر از اینها اسباب دیگری هم داریم که به واسط اونها ملکیت ایجاد بشود یا نشود رضا اول این سه سبب مورد بحث قرار میگیره و بعد از بررسی این ستا اگر نیاز بود بحث میشود آیا میتوان سبب دیگری را شمرد و وجود دارد که از او استفاده کنیم برای مالکیت فکری یا نه که اگر در نهایت نه این سه سبب و نه سببی دیگر نتونست پیدا کنیم اموال فکری ولو مالیتش ثابت شده تو مرحله دوم متوقف می شود به اعتبار اینکه اون مالک ندارد ملکیتی برای او فرض نمی شود تا بعد از او حقوقی برای مالک در نظر بگیریم چون همونطور که ما گفتیم اول باید مالیت شی فرض بشود بعد ملکیت او بعد حقوقی که بر او مترتب است لذا بحث در مرحله دوم است که آیا این انوال فكری ملک مخترع و کاشف او هستند یا نه که انشاءالله در جلسه بعد مورسه بررسی قرار خواهد گرفت صلى الله علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین